زار افسان برنابی از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدا آن یگانه مهرافرین سلام افسانه ها تاریخ شفاهی اقوامند و بنمایه‌هایی کهن و متعلق به زمانهای بسیار دور و گذشتند مزامین افسانه ها اغلب نبرد با مشکلات توانفرسا و گریز زندگی زندگیه در برامی این هفته هزار افسان، افسانی ایرانی براتون نقل میکنم به نام شفی گلیزرد برگرفته از کتاب قصه های فارس به روایت جمشید شهریاری از سیوند استان فارس و به گردآوری حسین آزاده امیدوارم که از شنیدن این افسانی زیبای ایرانی لذت ببرید روزی روزگاری پیرمردی بود که هفت دختر داشت پیرمرد روزها به صحرا میرفت و خار می آورد و میفروخت و از این راه امورات زندگیشون میگذشت یکی از همین روزها که پیرمرد برای خارکنی به صحرا رفت در حین کندن خار بزرگی یه دفعه به مار بزرگی برخورد کرد پیرمرد از ترس نزدیک بود زهر ترک بشه خاست فرار کنه که یهو مار بزرگ به حرف اومد و گفت صبر کن نترس من بودকরি ندارم به شرطی که یکی از دخترات رو به من بدی پیرمرد که انتظار شنیدن این حرف رو نداشت با تعجب پرسید دخترم یعنی یعنی یکی از دخترام زن تو بشه مار به تندی جواب داد البته مگه این کاچه ای پیرمرد گفت: ولی ولی جناب مار دختر که زن مار نمیشه آدمیزاد و مار که مار حرف پیرمرد و قطع کرد و گفت تا کارت نباشه برو به دخترات بگو شاید یکی از اونها قبول کرد که زنم بشه دروز هرچ بخوای به تو میدم پیر مرد به فکر فرو رفته بود که مار گفت اوه oh, این که فکر کردن نداره خیلی ساده است تو از کجا میتونی شاید یکی از دخترات منو همسری قبول کنه ها؟ حالا همینجا بمون تا برم و یه مقدار خوراکی برات بیارم تا ببری با خودت خونه مار بعد رفت و با چند کیسه برنج و آرد و یه خیک روغن به ند پیرمرد بازگشت پیرمرد که نمیدونست چی بگه مواد خوراکی رو برداشت و به طرف خونش افتاد پیرمرد وقتی به خونه رسید زن و دختراش به پیشوازش اومدن زن گفت به به به به امروز انگار شانس پت رو کرده که دست پر اومدی ها نکنه به جای خار گنج پیدا کردی مرد دخترها هم از اینکه پدرشون دست پر به خونه برگشته بود خیلی خوشحال بودن پیرمرد گفت دخترها خوب گوش بدین چی میکن امروز یه خاستگار براتون پیدا شده اینا رو اون داده کدوم یکی از شماها ها حاضرین زن اون بشین ها؟ دخترا با خوشحالی گفتن این خاستگار کیه؟ چجور آدمیه؟ چند سالشه؟ خونش کجاست؟ پول داره یا؟ پیرمرد فریاد زد بس کنین چه خبرتونه؟ اون آدم نیست دخترا با تعجب یه صدا پرسیدم آدم نیست پس چیه کیه پیرمرد گفت آه. اون یه مار خوشخط و خال بزرگه دختر اولی با شریدن این حرف گفت یه مار خوشخط و خال مگه مگه آدمیزاد زن مار میشه پدر دختر دومی خندید و گفت <تصفيق> مار چطوری خاستگاری میکنه پیرمرد گفت حالا که خواستگاری کرده دختر سومی گفت هر کی زن مار بشه زهرش رو به جونش میریزه و میکشه دختر چهارمی گفت به حق چیزایی نشنفته آدمیزاد و مار دختر پنجمی گفت من مطمئنم که پدرمون توی بیابون خیالاتی شده و به سرش زده دخترششو میگفت من که جورت نمیکنم به مار نگاه کنم چه برسه به اینکه زنش بشم و یهو دختر هفتمی که کوچکترین و زیباترین دختر خانواده بود با صدای بلند گفت من حاضرم زنوم بشم ماری که بتونه حرف بزن و خاستگاری کنه حتماً حکمتی در کارشه پدر من حاضرم زنمون اون بشم. پیرمرد سکوت کرد. اما مادر به گریه افتاد و گفت: آخه، آخه دختر، چطوری میخوای با یه مرز ازدواج کنی ها؟ اگه اون نیشت بزنه چی؟ اون وقت من با شروع کرد به گریه کردن. خواهرای دیگم هر کدوم چیزی گفتن و سعی کردن کوچیکترین خواهرشون رو از ازدواج با مار منصرف کنن اما دختر کوچیک خانواده به پدرش گفت جان، فردا به صحرا و رو و به اون مار خوشخط و خال بگو که من حاضرم زنون بشم پیرمرد سری سریع تکنداد و گفت امیدوارم خوشبخت بشی دخترم پیرمرد فردا دوباره به صحرا رفت و دید که مار همون جای دیروزی چمبره زده و منتظره مار با دیدن پیرمرد پرسید خوب چی شد به دخترات گفتی پیرمرد گفت بله بله دختر کوچیکم قبول کرده که زن تو بشه مار با خوشحالی گفت آه این خیلی خوبه تو از طرف من وکیلی که اونو به عقد در بیاری و فردا با خودت به اینجا بیاری بعد رفت و با بخشگ بزرگی برگشت پیرمرد با دیدن بخش از مار پرسید این دیگه چیه؟ مار گفت وقتی رفتی خونه اونو باز کنین، اون موقع میفهمین نگران نباش، چیز بدی توش نیست، لوازم ضروریه پیر مرد بخچر از مار گرفت و به خونش رفت، دخترا فوراً بخچه رو باز کردن، دیدن به به به چه چیزای قشنگی، یه دست لباس زیبا که تو عمرشون ندیده بوده یه دستبند تلا و جواهر نشون که برقش چشما رو کور میکرد. یه کیسه طلا برای مهریه ی دختر. یه جفت کفش سفید که توی تاریکی می درخشید. هر کدوم از دخترها یه قلم از اونا رو برداشتن. ولی هیچ کدوم اندازی اونا نبود. و همه چیز اندازه و قد دختر کوچیک خونواده بود. خلاصه. پیرمرد رفت و آقد رو آورد خونه و دخترش رو به عقد مار در آورد و فردا صبح دختر لباس و زیورالات رو پوشید و همراه پیرمرد روونه صحرا شد پیر مرد و دخترش وقتی به صحرا رسیدن دیدن بله مار خوش خط و خال منتظر زیر هم خار بزرگ نشسته مار با دیدن اونها خوشحال شد و به پیرمرد گفت پدر جان از این منو به خلاو می خودت قبول کردی و دختر قشنگت رو به من دادی ممنونم یقین داشته باشی از این مسئلت پشیمون نمیشی بعد یکیسهی پر از طلا رو به پیرمرد داده و گفت بیا بیا اینو بگیر و اموراتت رو بگذرون اگه باز هم لازم داشتی در خدمت گذاری حاضرم بعد رو به دختر کرده و گفت بریم ارسخانو بریم مار از جلو و دختر از دنبال رفتن و رفتن تا از چشم پیرمرد ناپدید شدند پیرمرد به خونه برگشت و مار با عروس خانم تنها شد. دختر گفت خب آقا داماد باید کجا بریم؟ خونت کجاست؟ اسم چیه؟ مار خنده ای کرد و گفت <تصفيق> تو قبول کردی که زن مار بشی. مار ماره. نام و نشون نداره. خونه من زیر سنگه. لای این خارها. دختر به سراحت گفت دست بردار بیا و از جلدت بیرون بیا من میخوام جمال شوهرم رو ببینم مار فکری کرد و گفت حالا که اینطوره بیا بریم تا خونم رو نشونت بدم تو دختر باهوش و عاقلی هستی اونا از شکاف سخری داخل شدن و دختر دید که از اون طرف دری به یه باغ باز شد باغی مثل بهشت پر از درخت و یه سرسبز و پر میوه که یه امارت بزرگ اون وسط قرار داشت. مار از جلدش بیرون اومد و شد یه جوون خوشقد و قامت و زیبارو دختر محو جمال زیبای شوهرش شد و با خودش گفت آها من اصلا افلشم می دونستم که سری در کاره و حکمتی وجود داره دختر رو به جوان کرد و گفت حالا حالا بگو ببینم اینجا کجاست تو کی هستی جوان گفت بهتره در این مورد چیزی ندونی شاید نتونی جلوی زبونت رو بگیری بهتره که هیچی ندونی دختر اصرار کرد و جوان گفت باشه باشه باشه میگم ولی اگه نتونی جلوی زبونت رو بگیری و راز منو فاش کنی دیگه هیچ وقت منو نمی بینی دختر گفت این چه حرفیه زن و شوهر محرم راز هم دیگن مطمئن باش من دهنم گرس قرص. جوان گفت باش قبول من من پسر شاه پریون هستم و اسمم شفی گلی زرده من گرفتار عجوزه سیاه زنگی زشتی شدم که توان مقابله با اونو ندارم من اینجا رو که از مملکت خودم دوره برای زندگی انتخاب کردم گاهی هم به خونه اون عجوزه سیاه زنگی میرم که به شک نکنه حالا مبادا چیزی در این باره به کسی بگی وگرنه دختر کلام شوهرش رو قطع کرد و پرسید وگرنه چی چی میشه جوان گفت اون وقت عروس زیبای من که تو باشی باید هفت کفش آهنی پاره کنی و دنبالم بدویی تا به من برسی همین دختر باز تکید کرد که مواظب زبونش هست و چیزی در این باره به کسی نمیگه چند روزی گذشت دختر کم کم دلش برای پدر و مادر و خواهرش تنگ شد شفیق گلی زرد که متوجه دلتنگی زن شده بود گفت بهترین لباس رو بپوش چادر و چاقچور کن تا بریم خونه بابات دختر هم بهترین لباس رو پوشید و چادر و چاقچور کرد به دنبال شوهرش شفیق گلی زرد به طرف خونه پدری براه افتاد نزدیک خونه که رسید شفی گولی زرد گفت برو برو هرچه خواستی اونجا بمون هر وقتم خواستی برگردی بیا من همین دور بر هستم اون وقت با هم برمی گردیم. دختر همین که وارد خونه پدری شد یه عطرش توی خونه پیچید مادرش جلو اومد و دست انداخت گردنش و گفت دختر عزیزم تو سالمی؟ فکر میکردم تا حالا مار کشته؟ الحمدلله که سالمی خواهرا با دیدن خواهر کوچیکشون شروع کردن به مطلب گویی سلام خواهر زهری ما آقامار شوهر چطوره؟ امروز چند دفه نیشت زده ها؟ خلاصه، اونقدر خواهرشون رو مطک بارون کردند که دختر شروع کرد به گریه کردن بعد با ناراحتی گفت اگه شوهر من ماربود حرف نمیزد، نمی نمیکرد، این همه طلا و جواهر نداشت، شماها حسودیتون میشه، چون شوهر من شفی گلی پسر شاه پریون تا این جمله از دهن دختر در اومد، یهو صدای شفی گلی زرد توی گوش دختر پیچید که نگفتم به هیچکس نگو، حالا باید هفت کفش آهنی پاره کنی تا به من برسی دختر بیچاره به خواهرش گفت همینو میخواستین؟ آره همینو میخواستین؟ حالا دست سرم برداره که بد بخش شدم بعد با سرعت از همون راهی که اومده بود برگشت هفت جفت کفش آهنی تهیه کرد و صحرا و بیابون رو زیر پا گذاشت دختر قرار و آروم نداشت و از اینکه راز شوهرش رو فاش کرده پشیمون بود و خودش رو سرزنش میکرد بالاخره یه روز که خسته و درمونده شده بود به کلبه ای رسید. پیل زنی عجوزه و زشت رو از کلبه بیرون اومد گفت: خاله جون کجا میری دنبال کی کردی ها؟ دختر که مستصل شده بود نشونی شوهر شفی گولی زرد رو به پیرزن داد و پیرزن همونو به داخل کلبه برد پیرزن دختر رو نزد خودش داشت یعنی در واقع زندانی کرد و به اون شکنجه و سختی هاگ زیادی داد یکی از روزا پیرزن پارچیگ سیاهی رو به دختر داد و گفت زود برو سر چشم این پارچیگ سیاه رو اونقدر بشور تا سفید سفید بشه اون وقت اونو برای من بیاره دختر بیچاره افسانه ما توی اون هوای سرد و یخبندان پارچه سیاه رو برد سر چشمه و انداخت توی آب اما هرچه شست سفی نشد که نشد دختر که دستاش از سرما زده بود شروع کرد به گریه کردن در این موقع یهو سرکله شفی گلی زرد پیدا شد و گفت تو اینچه چیکار کار میکنی؟ چرا دنبال من اومدی؟ تو که زیر قولت زدی؟ دختر گفت منو ببخش، منو ببخش خوهرهای بدجنسم منو وادار کردن راز تو رو فاش کنم من تا جون دارم تو رو ول نمی کنم هر بری دنبالت میام جوون گفت حالا بگذریم این پیرزنی که تو رو زندونی کرده همون پیرزن عجوزگ سیاه زنگیه که گفتم منو گرفتار کرده تو باید از دستون فرار کنی. دختر گفت، فرار؟ امکان نداره، اون خیلی مراقب منه جوون گفت، اون پارچه سیا رو بده تا من برات سفید کنم دختر گفت، نمیشه، از صبح تا حالا هرچی اونو شستم سفید نشد که نشد جوون پارچه رو گرفت و کشید زیر لب سفید سفید شد دختر با تعجب پرسید، تو، تو، تو چجوری؟ جوون گفت، مهم نیست؟ زودتر برو که اون اجوزه الان میاد دنبالیت زودتر برو دختر پارچه رو برداشت و به کل برگشت پیرزن با دیدن پارچه سیاه که الان دیگه سفید سفید شده بود فریاد زد این کار تو نیست این کار تو نیست کار شفیگون زرده اون این پارچه رو سفید کرده و بعد شروع کرد به شکنجه دادن دختر بیچاره. افسون روزها گذشت و هر روز پیرزن یک یه کار غیر ممکن و سخت رو به دختر میداد تا انجام بده و هی شفیگالی زرد به کمکش میومد و کار رو به درستی انجام میداد تا اینکه یه روزی پیرزن عجوزه به دختر گفت بیا بیا بیا برو خونی خارم ایچی خود برو خود دوست رو بگیر و بیار زود باش دختره تنبله تنلش. دختر به راه افتاد و رفت. توی راه باز هم شوهر شفی گلی زرد رو دید. شفی گلی زرد پرسید کجا میری با این عجله دختر گفت دارم میرم قیچی خود برو خود دوست رو برای پیرزن بیارم. شفی گلی زرد با ناراحتی گفت آه ای دختر بدبخت تو با پای خودت داری میری خوراک اون اجوزه بشی. دختر با وحشت گفت وای خدایا چیکار کار کنم؟ شفیگالی زرد گفت من راه چاره رو نشوند میدم وقتی رسیدی جلوی کلبه خواهر اجوزه یه خارزاره که خارهای تیز داره بگو حیف که کار دارم ویلا از این سوزنهای اعلا و زیباور می داشتم بعد یک گنداب رو میبینی که یه چوب روش انداختن بگو چه آبی؟ عین اصل و روغنه، حیف، حیف که وقت ندارم از این آب بنوشم بعد شطوری خابیده رو نبینی که جلوش یه استخون گذاشتن و سگی بسته که کاه جلوش قرار داره کاه رو جلوی شطور بذار و استخون رو جلوی سگ بعد برو سراغ قیچه خود برو خود دوز که توی تاخچه گذاشته اونو وردار پیرزن از راه میرسه از دری که بازگردی بیا بیرون و از بین شطر و سگ و چوب روی گنداب برگرد بیا دختر افسانی ما طبق دستوری که شوهر شفیگولی زرد بون داده بود وارد خوله پیرزن شد و غیچی خود بر رو از تاقچه برداشت همین که خواست برگرده پیرزن متوجه شد و دنبالش کرد اما به در بسته خورد گفت آی شطر این دختره رو بگیر آی سگ سیاه اونو بگیر نذار این فرار کنه اما شطر گفت تو به من استخون دادی و این دختر به ام داد سگ سیاه هم گفت تو به من کاه دادی و این دختر به من استخون داد پیرزن به گنداب گفت تو بگیرش نظر فرار کنه آب لجن با تو هم گنداب گفت تو به من گفتی آب لجن ولی این دختر به من گفت مثل اصل و روغنم خلاصه پیرزن که دید هیچکدوم کدوم از اینا جلوی فرار دختر رو نمیگیرن خودش رفت که از روی چوب داخل گنداب رد بشه که افتاد توی گنداب پیرزن به خار تیز گفت آی خارتیز این دختری خود رو بگیر زود باش خارتیز گفت اون به من گفت سوزن اعلا و قشنگ من چجوری اونو بگیرم نه نه من به حرف تو گوش نمیدم خلاصه، پیر زن افتاد توی مرداب و خفه شد و شفیگوری زرد فورا دست زنش یعنی همون دختر پیرمرد خارکن رو گرفت و پا به فرار گذاشت. اونا با خوشحالی به خونه خودشون رفتن و با خیالی آسوده به زندگیشون ادامه دادن افسانه ایرانی شفی گلی زرد رو براتون نقل کردم بر گرفته از کتاب قصه های فارس به روایت جمشید شهریاری از سیوند وستان فارس و به گردآوری حسین آزاده پاسداری، ثبت و ضبط افسانه ها که بخشی از میراث فرهنگی معنوی و هویتی ما به شمار میرن وظیفه یک امروز به اون بها ندیم و به اون نپردازیم فردا خیلی دیره. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار افسانه قربانزاده اجرا مهران دوستی صدابردار ناصر سلیمانی تایه‌کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود